Thank mm -hmm. you. بولاد بلند شو صدای پدر بود قلط زدم پاشون نمازت قضا شد چشم باز کردم اتاق نیمه روشن بود قاب در خاکستری بود و انگار میلرزید. تمام شب پاسبان دم در خانه فاضل خوابم را حرام کرده بود خواب میدیدم، بیدار می شدم و تو بیداری خواب ادامه می و باز خواب می رفتم. زنها تو درازای کوچه از پس چینهای بام گردن میکشند مردها مقابل خانه ایمان جمع شدهاند. خیال میکنم اگر پاسبان دستش را دراز کند از پهنای کوچه میگذرد و از دالان خانه ایمان میگذرد و میآید تو حیات و انگوشت ها هر کدام جدا از هم تو اتاق ها میگردند باز بیدار شدم و تو بیداری خواب دیدم پاسبان به در بسته خانه فازل تکیه داده است سید آقا هست، جعفر و احمد هم هستند همه به حرف مرد قریبهی گوش می دهند که می گویند از راه می و دیده است که شروع است و ایستاده است مرد قریبه می گوید بله شنیدم می دونم با تهران رابطه داشته مرد قریبه چاق و سرخ است عینک دودی هم زده است می خواستن شاو بندازن همه به مرد قریبه نگاه می کنند سید آقا از همه بیشتر تجب کرده است دماغش را میخورراند. باز انگار خواب رفتم. صدای پدر جهاندم. فولاد زور شد باید بریم. نشستم و چشم ها را مالیدم. پاییز بود. اما هوا هنوز گرم بود. دیدم فرشها و رختخوااب ها کومه شده از گوشه اتاق. گیج بودم. یادم آمد که باید با جهاز برویم خرمشهر شهر و بعد از آنجا از کوت شیخ سوار ماشین بشویم و برویم آبادان بار اول که پدر میرفت تو شرکت نفت استخدام شود و برگرداد همه را ببرد همراهش رفته بودم بازار معین همیشه بوی چرم و بوی پارچه نو میداد. پدر با میرزا محمود بچیلزاده احوالپرسی پرسی کرده بود بچیلزاده مشته را کوفته بود رو تخت کفش و گفته بود به سلامتی رفتنی شدی اوست درویش از بازار سرپوشیده معین و از بانک شاهی رد شده بودیم جهازی ایستاده بود کنار سده با تناب کلوفت مهارش کرده بودند ناخدا تکیه داده بود به نرده جهاز و دورا دور را نگاه میکرد تا پدر بلیت بگیرد به نخلهای آن دست کارون نگاه کرده بودم خورشید تازه سرزده بود نخلها ها و انگار تو برکشان آتش افتاده بود. پاسبانی کنار صدده قدم میزد. بوی شرجی و بوی ماهی زنده میآد. خدا خدا کرده بودم که وقتی بیبی عممه جواهر و مادر میآیند اقل رو مقنع کلاه به سر گذاشته باشند. پاسبان نگاه هم کرده بود و رد شده بود. چرا غزغز می کنی فولاد؟ صدای پدر بود تل خود تند. برخواستم، در گنج باز بود، زرف ها و خرد ریزها را رو روهم ریخته بودن تو گنجه، بوی تریاک آمد، از اتاق زدم بیرون، آقا نشسته بود پای باخچه و تریاک میکشید. گویا تریاکش را پیش انداخته بود که همراهمان بیاید تا سوار شویم و خداحافظی کند خال زیبا سماور را گذاشت پای سفره صبحانه، مادر انگار فرصت نکرده بود چای دم کند، خیلی گرفتار بود خیلی دست بود سید آقا گفت نه نه احمدی قوطی سوختار کجا گذاشتی؟ خال زیبا گفت هرچه گم میکنی اما میخوای؟ سید آقا حقه را باز کرد و دم نزد دماغ را خاراند و حقه را خالی کرد سید احمد و سید جعفر کمک پدر میکردند خانه ریخت و پاش بود یختان، صندوق پلیتی اخرایی، بسته قالیچه‌های بختیاری، گلیم و لحاف بزرگ وسط حیات بودند. چادرشب شب هنوز گره نخورده بود. نشستم لب حوز که وضو بگیرم. مادر لحافچم را آورد تا بگذارد رو رخت خوابها. پدر گرفتش و پرتش کرد تو اتاق و گفت یه همه بار سنگین نکن. بیبی بی هنوز رو سجاده بود و ذکر میگفت اگر امه جواهر ناخوش نبود، تاریک روشن آمده بود که با چادر و مغنعه بیاید و از نگاه پاسبانها دور باشد. بار اول که با پدر رفته بودم تا پدر استخدام شود امه جواهر حتی تا پای صده آمده بود. دوبه لحظه لحظه بارش سنگین شده بود و با آب نشسته بود. هممال مثل مورچه پشت سر هم، زیر لنگه های برنج از رو دوسه گذشته بودند و جاشوها کیسه ها را تو دوبه صفافی کرده بودند اما جواهر پشت سر مردش ایستاده بود رو مغنعه کلاه گذاشته بود و چادر را تا کرده بود و زده بود زیر بغلش اگر پاسبان می رفت کلاه را بر داشت و چادر به سر می کرد. اما پاسبان پیوسته می رفت و برمیگشت. باد گشت کو برخواسته بود کارون بیقرار شده بود جهاز بوغ کشیده بود و امه جواهر کنار صده کلاه را با هر دو دست گرفته بود بیبی بی گفت فولاد به جم زودتر بریم کجا بیبی؟ خونه امه خداحافظی کنم حلالی به تلبام از کنار حوض برخواستم روز جمعه شوهر امه جواهر رفته بود لالی که شب بیاید نیامده بود مادر قر میزد نمیذاری چیزی ببرم. ای لامپا چی؟ تو ابدان یعنی برق ها؟ خوی خوردریزه لازم میشه دوباره باز پول بالاش بدیم پدر گفت لازم نی و جا, جا شد و زمزمه کرد و باز گفت به تو میسپارمشون پارمشون سید آقا مثل خونه آبشون بده سید آقا سید آقا گفت همه به خدا سپرده ایم پدر گفت البت و صداش تکانم داد. داره نمازت قضا میشه بچه. پدر نشست کنج باغچه و با انگشت خاک مرطوب باغچه را گود کرد. مادر باز غر زد. صدای پدر بلند شد. ای صبح شنبه اوقاتمون تخ نکن زن. پدر از باغ شکاره کنار درشت عنابی آورده بود که تو باغچه بکارد. بسم الله گفت و دانه را کاشت. سید آقا حقه را بست و گفت اوست درویش چهار کنج باخچه به تا جاشون معلوم باشه پدر گفت شالا تا چشم هم بزنی هر چارتاشون سبت شدن پدر نشست پای شیر آب تا دستها را بشوید و نیمتنه را تن کند جانماز را پهن کردم تو ایوان فاضل یادم آمد هیچ کس از فاضل دلگیر نبود همیشه لبخند میزد کتاب فروش بود سید احمد می گفت که گاهی از تهران برایش روزنامه میآید. آید سید آقا می گفت تنها عیب فاضل همین روزنامه خواندنش است می گفت این روزنامه ها آدم را از دین به در می کنند نیت کردم و تکبیرت و گفتم باز فاضل آمد مرد غریبه می گوید رئیسشان را می شناسم سید آقا می گوید اقلا سرهنگی میرپنجی کتابفروش که نمیتونه شهر را بندازه بیبی بی از لب دیوار بام سر میکشد تا پاسبان را میبیند پس میرود در خانه فاضل باز میشود اول رئیس کلانتری میآید بیرون مالک یام الدین پهلوی شلوغ است رئیس کلانتری به کسی اهتمام نمی کند پس میکشم کنار دیوار و نگاهش میکنم نه سینما صفحه گذاشته است غروب است صدای صفه تا آن سر شهر می رئیس کلانتری سرش را بالا گرفته است ولم یکن لهو انگار ته خیابان را نگاه می کند. پاسبان دم در خانه فاضل سلام نظامی می‌دهد. پاشنه‌ها را چنان به هم می که انگار ترقه در می‌کند. مرد غریبه کلاه به سر می‌گذارد و از مردها جدا می شود. سبحان ربیل، شک کردم برگشتم و به پدر نگاه کردم عصبانی شد. زودتر بزن به کمرت با بیبی بی برو. باز نیت کردم. الله اکبر. همیناست دیگه. همیناست که آدم و یاقی و باقی میکنه. جعبه تخته بزرگی تو بغل وکیل کلانتریست است. پر است از روزنامه کاغذ و کتاب. وکیل کلانتری پیشاپیش فاضل از خانه میآید بیرون. کوتاه هست و پهن. برق نشان پیشانیش چشمم را می گیرد. چی گفتی سید آقا؟ همین که به دستایی فاضل زدن؟ پشت سر فاضل مرد درازی است که کراوات سرخ بسته است موی سرش از وسط فاق است کلاه پهلوی دستش است بعد دو پاسبان همقدر شانه به شانه توفنگ و لزالین نماز را بریدم خیال کردم که اقامه نبستم ماندم از نو خواندم. دبین فولاد بر میگردم و نگاه میکنم فاضل لبخند میزند مدرسه میری یا نه دست با چه نه نه هنم پاکت زرد بزرگی دستش است ولی نسیم و ناصر میرن بچه های حسن بننا. به لکنت میافتم. ها میرن دستش میرود تو پاکت سید کازمم میره لیموی درشتی می دهد به دستم پسر سید محسن سرم را میاندازم پایین ما مکتب می پیش ملا احمد قاغذی میزند پس شانم مکتبم خوبه اما مدرسه بهتره حرف فاضل را به پدر گفتم پدر رفته است تو فکر را اخ کرده است ملا احمد قاغذی را سر شام دعوت کردیم. پدر حرف فازل را به ملا میگوید. نگاه ملا احمد نامهربان می شود پدر چشم بره می رود با سر اشاره می کند از اتاق بروم بیرون پشت در گوش می ایستم چیزی نمی شنم. پدر صدام می کند بله بابا بیا تو میروم تو اتاق دیگه چی گفته هیچ نمی گویم در اتاق ببند در خانه فاضل نیمه باز است و لا شریک له از زن فاضل خبری نیست مرد غریبه شانه به شانه رئیس کلانتری راه می‌افتند پیاده می روند دور می‌شوند فاضل دور می‌شود السلام علیکم لنگه های در خانه فاضل باد میخورند و لولا ها انگار صدا می‌دهند السلام علینا از نو سردرگم شدم اشهد را تمام کرده بودم چیزی نمانده بود گفتم سه رکعت خاندم یک رکعت خاندم گفتم حتی انگار نیت نکردم بیبی بی گفت په ای چه نماز خوندن یکی تمومینه داره پدر گفت نماز جعفر تیار میخونی بچه باز نیت کردم دل دادم که شک نکنم صدای پدر آمد احمد بیزه یه توکیپا برو به کلبران بگو پیش از زور دو تا حیوان بفرسه یه اسباب اساسیه رو ببرن تا صده گفتم ربنا آتنا چه بلایی سر فاضل میارن سید امد دندان بزرگش پیدا می شود داغ و درفشش تا مغار بیاد مغار سید امد؟ دماغش رو می گیرد آه مغور تا بگه با کیا بوده چی کار میکردن چی طوری میخواستن شاب اندازن نمیدونم شاید بود بود داشتن بود بود یعنی چی سید امن صدای سید آقا خشدار بود جعفر بله بابا بدو احمد و صدا کن بگو بره پیش رحیم خرکچی صدای پدر از اتاق آمد چرا مشرحیم؟ کلبرام که بهتره یادم رفته بود بگم، کلبرام لگت خورده تو بیزاش، خوابیده چرمه زده بوی گلاب بیبی بی آمد، بعد انگار حس کردم که سایش رو گردم سنگینی کرد پسی چه ایقدر طولش میدی فولاد؟ صدای پدر ترکید چند دفع نیت میکنی بچه، ای چه وسواسیه به جون افتاده خواندم و قصد کردم سر فرصت قضاش کنم جانماز را برداشتم و نشستم پای صفری صبحانه دلم چرکین بود انگار چیزی گم کرده بودم فکر کردم که دعا را نخوندم فکر کردم که اشهد را درست نگفتم به پسرام تا استکان چای را به حلقم ریختم و برخواستم صدای کبوتران چاهی آمد بالا را نگاه کردم نشسته بودند لب دیوار بام و سینه ایشان تو آفتاب که تازه سر زده بود، سبز و کبود بود. گیوه هم را ور کشیدم. صدای مادر در آمد. سیچه قندره پات نمی کنی. پدر گفت، حالا دو ساعتم گرفتار بند قندره میشه. بدو. صدای پدر تا دم در خانه همراهمان آمد. زود ور گردینا. جهاز پیش از زور حرکت میکنه. آفتاب پهند شد. بیبی بی مثل همیشه که میرفت پیش ام جواهر دست پاچه بود. تند میرفت. حواست که هست پسرم. ها بیبی بی، حواسم هست. اگه آژان دیدی خبرام کن. چش بیبی چش ما خوب بر نمیکنه. از مقابل خانه شیخ ابراهیم گذشتیم در خانه بسته بود. پنجره ها بسته بودند. شب قبل دیر وقت وقتی که خوب تاریک شده بود و کوچه خلوت شده بودند، پدر رفته بود و با شیخ ابراهیم خداحافظی کرده بود. مدتی بود که شیخ چهارشنبه شنب شبها نمی آمد خانه ایمان روزه بخواند و یا اگر گاهی می آمد دیر می آمد. را میکشید بی سر و صدا واقعی می و میرفت. از همسایه ها تنها سید محسن می آمد و پسرش سید کازم که تو مدرسه دانش پهلوی بود. کچ کردیم تو خیابان کلیسا. نیمه نفس شده بودم. کشیش نسرانی ایستاده بود دم در کلیسا و با کسی حرف میزد. بلندبالا بلند بالا بود و سرتاپا سیاه پوشیده بود صدای حبس سوت از دور آمد خیلی بلند بود عروس گل از باد سبا شده در چمن چهر گشا از خانه سروان بهادر بود که سر چهارراه بود پیش از گاراش علا ای سنم ز بحر خدا ز پیچ زدن هزار کن بیبی بی پا توند کرد. تون تر پسرام. دویدم از بیبی بی زدم جلو. اخم بیبی تو هم بود. صداش گرفته بود. هر وقت که عصبانی میشد صداش می گرفت. به خانه سربان رسیدیم. صدای حبس صوت از پنجره باز بیرون میزد. خیابان را پر کرده بود. هور و پری در هجاب، شمس و قمر در نقاب. بیبی بی پیش افتاد، صدای حبس صوت دنبال من آمد. ای سنم ز پیچ زدن هزار کن. نرسیده به خیابان پهلوی بیبی ایستاد. صدای حبس صوت دور شده بود و پیوسته انگار تکرار میشد. نفس تازه کردم و به زمزمه بیبی بی گوش دادم. آیت الکرسی میخند و به خودش میدمید. باز خواند و دمید. تو خیابان پهلوی همیشه پاسبان بود. دوتا دوتا با هم بودند، باتون به کمرشان بود، کلاهشان دولبه بود، می رفتند و برمیگشتند می گشتند، می رفتند و رو پاشنه چرخ می زدند و برمیگشتند. سختی راه پهنای خیابان پهلوی بود، اگر به سلامت رد می شدیم، رفته بودیم دل تو دلم نبود، اصر روز قبل صدای سرکار قادر که همیشه دم در حکومتی بود، لرزانده بودم بیا اینجا ببینم به چشمانش که انگار خونی بود نگاه کرده بودم زانوهام سوس شده بود خواسته بودم حرف بزنم اما صدا تو گلویم ورم کرده بود خیال کرده بودم که اگر تقلا نکنم و حرف را از گلویم بیرون نکشم خفه خواهد کرد سبیل بزرگ سرکار قادر جنبیده بود اوی با تو هستم با مو ملتفت شده بودم که با من نیست یک هو خیص عرق شده بودم و پشت سرم را نگاه کرده بودم دیده بودم که مرد عربی دشداشه پوشیده است و بزغاله سفیدی به دوش دارد دیده بودم که مرد عرب عین مجسمه ایستاده است و انگار تلسم شده است چشمان مرد عرب گشاد شده بود خیال کرده بودم که چشمها تا لحظه دیگر مثل دو پروانه سیاه و سفید از کاسه بیرون می‌پرند. سر برگردانده بودم و باز به سرکار قادر نگاه کرده بودم. لبخند میزد میزد، دهانش می جنبید، انگار سقیز می جوید سرگردان شده بودم سرکار قادر یکو از جا کنده شده بود و رانده بود به طرف مرد عرب و رسیده نرسیده شطرق خوابانده بود تو گوش مرد عرب و بعد تند و تیز چاقورا را درآورده بود و دامن دشتاشی را از زیر ناف چرخی پاره کرده بود و از پاش درآورده بود و داده بود به دستش بحت زده نگاهشان کرده بودم مرد عرب با گرد پای چرک و گشاد و پاهای دراز و پرمو هاج و واد شده بود و نفسش در نیامده بود از خال اختر شنیده بودم که همین سرکار قادر چادر را از سر زنها میکشد و ریش ریش میکند و پیش چشم همه آتش میزند از سید آقا شنیده بودم که اگر مردها کلاه پهلوی به سر نگذارند پنج تومان و دو قران جریمه میشوند سید احمد گفته بود که اگر بچه ها تو خیابان بشاشند پنج تومان و دو قران جریمه می شوند. سید سمد گفته بود راست و دروغش با خودش که فاضل گفته است دلش می خواهد پنج هزار و دویست تومان پول داشته باشد و به هزار جای مملکت رضاخانی بشاشد فولاد ای طرف بیبی بی استاد پای پیت بزرگ شهر داری پیت پر بود از آشغال. تازه رنگش کرده بودند بیا اینه بگیر بیبی بی پای پیت چندک زد تا رخت عوض کند چادر بیبی را مثل پرده گرفتم تا مقنع را برداشت و خرمن گیسو را جمع کرد و کلاه نمدی لبه پهن را به سر گذاشت همه کارها را شتاب زده کرد و شتاب زده آیت الکرسی خاند صداش بلند بود و میلرزید. لرزید و چادر شب را بست تو دستمال بزرگ یزدی و داد دستم و برخواست دستکش سیاه را به دست کرد و گفت بودا پسرم دو تا ای خیابون نعلتی رچیم موی هنایی بیبی از پس کلاه بیرون زده بود و کلاف شده بود دور گردنش دستش را گذاشت پس گردن و پا توند کرد دم در گاراژ چند مرد ایستاده بودند همه کلاه پهلوی داشتند شاگر چوفر تایر لکنتی را باد می کرد خیص عرق بود تا بیبی بی را دید تلمبه را رها کرد کلاه از سر برداشت دست گذاشت به سینه خم شد و خنده بر لب گفت تعظیم ارز میکنم ماز مازل مردها زدن زیر خنده. بیبی بی زرد شد. با کلاه سیاه و روپوش و دستکش سیاه شده بود عین کشیش نصرانی ها که همه روز اصرها با چندتا از زنان و دختران بیهجاب نصرانی از خیابان خانه ایمان میگذشت. خیابان پر میشد از بوی اطر. تون ترفولاد تو خیابان پهلوی دو پاسبان با هم قدم می زدند. هر دو بلند قامت بودند خیار کردم که دوتا کوسه از دم شرجی و گرمای آب آمدن به سطح کارون و تیقه های گردهشان آب را میبرد و باله به باله پیش میآیند. آیند دستباچه گفتم بیبی کوسه بیبی نگاه هم نکرد گفت کوسه و کوفت کاری صدای بیبی بی گرفته بود تونتر از پهنای خیابان گذشتیم نفس کشیدم کچ کردیم تو کوچه مسجد اسفحانی ها. در مسجد بسته بود کوچه از کمر خم برداشته بود بعد از در مسجد بیبی بی پاسوست کرد نیمه نفس بود ایستاد و دروبر را نگاه کرد کسی نبود رو قرنیز در مسجد چند کبوتر چاهی دور هم می گشتند. از نزدیک از جایی تق تق می آمد. انگار کسی یا کسانی مسگری می کردند، صداها در هم بود و سکوت کوچه مسجد انگار سنگین تر می بیبی بی بخچه را از دستم گرفت، حلاس حلاس می کرد، از نفسش انگار بوی قلیان به دماغم خورد، گفت، وایسه کنار دیوار، ایستادم و چادر را گرفتم تا کلاه را برداشت و مغنعه را به سر گذاشت، خیس عرق بودم گردم می خارید. بوی گلاب بیبی بی و عرق تنش قاطی شده بود پس شانه هام را به دیوار ساییدم بیبی بی گفت حیقت قطع نخور بچه تا رخت عوض کنم دستکش ها را از دست درآورد. تقطق تقتق مسگری یک لحظه افتاد و باز آشفته تر بلند شد بیبی کلاه و دستکش ها را بست تو دستمالو و نیمخیص شد تا چادر را بگیرد و سر کند یک ها رنگ از رخش پرید و لبانش بنا کرد به لرزیدن سرگردان شدم بی, بی خیال کردم همین دم است که چشمانش مثل دو پروانه سفید و خرمایی دو پروانه خیس و خسته از کاسه ها پرواز کنند بیبی بی چه حس کردم چیزی انگار رو و پس گردنم سنگینی می کند سرگرداندم و دیدم که سرکار قادر لبخند به لب پشت سرم ایستاده است و سبیل و دهانش می جنبد صدای مسکوبی آشفته و آشفته تر شد